اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذا به نام خداوند بخشنده بخشایشگر سوگند به ستاره هنگامی که افول می کند ما ضل ما که هرگز دوست شما محمد منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است وما و هرگز از روی هوای نفس سخن نمیگوید این هو آنچه میگوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست. علمه آن کس که قدرت عظیمی دارد جبرئیل امین او را تعلیم داده است همان کس که فوق فوقلادی دارد او سلطه یافت و در حالی که در افق اعلا قرار داشت ثم دنا سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد قاب تا انکه فاصله او با پیام بر به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر بود اوحا الى ما اوحا. در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بند اشبه نمود قلب پاک او در آنچه دید هرگز دروغ نگفت آیا با او در باره آنچه دیده مجادله می کنید؟ ولقد رآه اخرى. و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد عند السدرة المنتهى ند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى في جنة المأوى در آنجاست إذ يغشى السدرة ما يغشا در آن هنگام که چیزی نور خیرکننده ای سدره المنتهى را پوشانده بود مزاغ البصر وما طرا چشم او هرگز منحرف نشد و توقیان نکرد آنچه دید واقعیت بود لقد رآ من آیات ربه او پاره ای از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را دید. افر ایتوم و والعزه به من خبر دهید. آیا بچهای لات و عزا و منات الثالثة الاخرى و منات که سومین آنهاست دختران خدا هستند آیا سهم شما پسر است و سهم او دختر در حالی که به زعم شما دختران کم ارزش ترند تلك در این صورت این تقسیمی ناعادلانه است این هی الا اسماء سمیتموها سمیتموها انتم و اباؤکم ما انزل ما انزل الله بها من سلطان اين یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى اینها فقط نامهایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته اید نامهایی ای بی محتوا و اسمهایی بی مصما و هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده آنان فقط از گمانهای بی اساس و هوای نفس پیروی می کنند در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است یا آنچه انسان تمنا دارد به آن می الاخره در حالی که آخرت و دنیا ازان خداست و کم من ملك فی السماوات لا تنفع شفاعتهم شيئا إلا, الا من بعد ان الله لمن يشاء و چه بسیار فرشتگان آسمان ها که شفاعت آنها سودی نمی بخشن. مگر پس از آنکه خدا برای هر کس بخواهد و راضی باشد اجازه شفاعت دهد. این کسانی که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را دختر خدا نامگذاری می‌کنند. و ما لهم بهی من علم این یتبعون الا الظن و این الظن للا یغنی من الحق شیئا. آنها هرگز به این سخن دانشی ندارند تنها از گمان بیپای پیروی می کنند با اینکه گمان هرگز انسان را از حق بی نیاز نمی کند. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَن, عن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا حال که تنین است از کسی که از یاد ما روی میگرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمی‌طلبد اعتراض کن ذلك مبلغهم هو بمن, بمن این آخرین حد آگاهی آنهاست پروردگار تو کسانی را که از راه او گمراه شده اند بهتر میشناسد و همچنین هدایت یافتگان را از همه بهتر میشناسد وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ لِيَجِزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا, ليجزي الذين اساؤوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجِزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَا و برای خداست، آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، تا بدکاران را به کیفر کارهای بدشان برساند و نیکو را در برابر اعمال نیکشان پداش دهند. الذين <تصفيق> يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم إذ انشئكم من الارض وإذ انتم واذا انتم اجننه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى همانها که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری میکنند جز گناهان صغیره که گاه آلوده آن می شوند. آمرزش پروردگار تو گسترده است او نسبت به شما از همه آگاه تر است از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقع که به صورت جنین در شکم مادرانتان بودید پس خود ستایی نکنید او پرهیزگاران را بهتر می شناسد. اثر ایتى الذي آیا دیدی آن کس را که از اسلام یا انفاق رویگردان شد و اعطا قلیلا و بچمی عطا کرد و از بیشتر امساک نمود. عنده علم الغیب فهو یرا آیا نزد او علم غیب است و میبیند؟ ام لم ينب بما فی صحف موسی یا از که در کتب موسی نازل گردیده با خبر نشده است و برایم و در کتب ابراهیم همان کسی که وظیفه خود را به طور کامل ادا کرد الا وزر اخرى. که هیچ کس هیچکس بار گناه دیگری را بر دوش نمیگیرد و ان الا ما و اینکه برای انسان بحره ای جز سعی و کوشش او نیست و و اینکه تلاش او به زودی دیده می شود سپس به او جزای کافی داده خواهد شد و آیا از کتب پیشین انبیا به او نرسیده است که همه امور به پروردگارت منتهی میگردد و و و اینکه اوست که خنداند و گریاند و و, و اوست که میراند و زنده کرد و ان و اوست که دو زوج نر و ماده را آفرید من نطفتین عداد نه از نطفه ای هنگامی که خارج می شود و ان عل و الخوررا و اینکه خداست ایجاد عالم دیگر تا عدالت اجرا گردد و هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى اینکه اوست که بیناز کرد و سرمایه باقی بخشید و ان هو رب و اینکه اوست پروردگار ستاره شعرا و ان اهل و آیا به انسان نرسیده است که در انبیای پیشین آمده، که خداوند قوم عاد نخوستین را هلاک کرد و همچنین قوم سمود فما ابقا رحم کلین قوم ثمود را و کسی از آنان را باقی نگذارد و قوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى و نیز قوم نوح را پیش از آنها چرا که آنان از همه ظالم تر و تقیانگرتر بودند و, و نیز شهرهای زیر و رو شده را فرو کبید سپس آنها را با عذاب سنگین پوشانید بگو در کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید دارید هذا پیام من النذور بین دهنده ای از بین دهندگان پیشین است از این آنچه باید نزدیک شود نزدیک شده است لیس لها من دون الله کاشفه. و هیچ کس جز خدا نمیتواند سختی های آن را برطرف سازد هذا تعجبون آیا از این سخن تعجب میکنید بعد مخون ولا تبكون و خنديد و نمیگریيد وانتم سامدون پیوسته در قفلت و حوسرانی به سر میبرید حال که چنین است همه برای خدا سجده کنید و او را بپرستی